بسم الله الرحمن الحمد رب العالمين و صل الله على سيدنا و رسول الله و الطيبين الطاهرين المعصومين لا على اللهم ورحمنا يا رحمه که بود راجع سه بود و بعض از احکام مهمترین حکمش هم حد شد که قتل باشه یاد وقتون بستهی حالا امه واسه در درباره قتلش هم از دو فتوا بود بین احل سنت این که یکتر ولا یستتاب یکی یکتر یستتاب یعنی اگر توبه نکرد یکتر که توضیح و یک ربایتی یک قومی هم بین احل سنت ضربتون علا امه واسه الا بحث داره. در بحثون به سیف. پس سه تا مبنایی که در احوال اهل سنت شده، شده آن در روایات ما موجوده. خصه در روایات ما موجود. الا اینکه یکیش دو تاش در روایاتی است که اینا ها از به اصطلاح اهل سنت هستند، هیچ ربطی اصلا کند به که منتهی میشه به صاحب نعما و ایمان صادق علی ان اوی ان آقای یکی از روایت سکومیز است که در این دو تا غلط است و در طرق اصحاب ما روایتی که مثل زراره و اینها باشه که منتهی بشه به خود علی علیه السلام و صادق امام واقع نره غلط نره این اطلاخم روشن بشه ولی شما از کتاب اصحاب داریم که در کتاب کافی آمده و تحقیق در کتاب صدوق هم نیامده سندشم اشکال داره زربتان علا ام رأسه این مجموعه روایات ما پس مجموعه روایات ما در کتب اهل قیلشیه هم و امیر المؤمنین و حد و القرط داده شده مثل کتاب مصنب زید زید ابن علی من عبیه ان ان عبیه سجاد ان عبیه حسین ان قال و علیه این هم ما داریم اما در خود درایوا او ما از خود این ما نداریم حد و ال نداریم چه حد و تا این مقدار یا چه حد و ال قطل این حد و ال یا حد و ال در میان مصادر عامه هست در فتاوای عامه است توی روایات زیدی ها هم ان امیرالمؤمنین هست البته زیدی ها ادیشن با این که این روایت مستدر زیده هست الا انیتوب رو گفتن حالا من خیلی واضع اقوال زیده چون اصلا بحث فتیش رو برمیخوام متعرض بشم فعلا بحث حدیثیش در اینجا چون حدیث نعیارش به یک معناییست به حدیث عامه برمیگرده که سکونی یکی هم قیاسبن کلوب چون این هر دو روایتی که حدوالقفله حد یکیش رو قیاسبن کلوب نرمی میکنه. که آمیز آم یکیش رو هم سکونی نرمی کنند و هر دوش در مسادر ما از عیمه علیه همون نیامده از مسادر خودمون مثلا کتاب حسین سعید این کتاب های این طوری خودمون مثلا زراره نبی جعبر مثلا یا زراره نبی عبدالله در اینها نیامده الا اون حدهو زردتون علا از که در کتاب کافی آمده سفدوق هم نقلن کده شیف توسیم از کافی هم مشکل داره. این مجموعه یه روایات یه حد ساهره ما دیدیم حالا که بحث به اینجا پشید لیمان میخواد حال چند مدت یه مقضا بحثی رجاله و توسعه بیشتری بگیم راجب به این دو نفر یکی سکونی و یکی قیاسه بزن کلوب یک توضیحاتی داده بشت راجب سکونی و هم قاضی خودمون ازوران استاد رو خوندیم که ایشون قبول فرمودن توسیق سکونی رو حسن راجع به سکونی هم توضیح داریم راجع به سکونی مخصد حتی این ببایت ما موظم روایات سکونی چون از طریق نوفلی نقل شده غالبا دو تا اشکال هست به اراد سکونی که خود سکونی ای که هم جرت من مرموم هر دو رو قبول پرموده نوفلی هم به خاطر اینکه در تفسیر علیه مدرائیم هست و سابقه هم کامل زیارات سکونی هم به همین هست و بعد هم عبارت قدس الله در عده اون وقت عبارات ایشون رو خوندیم توضیحات ایشون رو عرض کردیم بله اون وقت بعد متعرض عبارات مرحوم حاجی عبارات توستری قدس الله سلطه تو قاموس رجال شدیم ایشون یک مقدارش رو متعرض شدیم و ایشون اشکال کرده. که از این عبارتی که از شیخ نرسوی در عده اثبات وساقت نمیشه که. و به قول خودشون خوندیم سابقه نقل نا کلام شیخ به طولی هی لعن المحقق تبه همه ان کلام او هادا دالون علا ان الامامی مجمعون علا العمل به روایاتی میشه محقق میگن نه حالا خود مرحوم آیتوستری یا مرحوم استاد نه آمدن دقت تاریخی و سیر تاریخی قصه رو بگن ما اینشالله بعد توضیح میدیم فعلا عبارت آنون میکنیم بعد ایشون یه بحثی رو مفرح کردن که در بین متاخر و متاخلیم به اصطلاح از شیعه مطرح شده مون اون که آیا واقعا ایشون آمیس یا نه توز... ایشون رو آمی نگرفته و شیخ و کلی صدو نج... و کتاب های دیگری حالا ایشون هم بعد یک بحث کتاب توستری برمون توستری راجع به آمی بودن اینشونه و بحثوی کردن مثلا گفتن شیخ گفته که آمیس نوهم نه دراجم در گفته آمیس با اینکه نوهم نه دراج در جزو است هم نجرچی هم کشی اینشون سر کرده جواب بده بله یا مثلا یک روایت که از امام صادق نهار کرده که ظاهرا به تشیغ میخوره نیم میخوره که سنی باشه بازم جواب دادن بررسی کردن یکی دوست خبرم نوشتن که خبرهای شازده ایشونه بعد و من ما زکرنا من نمی کنم آن مراجعه کنم یه بحثی صفحه تو... ایشون شواهدی برای آنوی بودن سکونی دارن اصافه هم زیادی شواهدی زیاده بحثی ایشون نداره. حالا هم شیخ شهادت داده هم شواهد خارجیش حاکی افن این مطلب بمع ما ذکرنا یا بحر که ما فی نقله رواشه نقلیه زمین برنگرد مفهوم بابغانی حساب تنگی از هم که از مشکلات این کتاب حاشیه بعد از تنگی اگه خود ایشان رحمت الله علیه که خیلی زحمت کشیدند مستقل کتاب رو می نوشتند خیلی خوب بود چند تا اشکال همین منشأ شده اولا ایشون تمام رجال ننوشتن اونجایی که به امام غالی اشاره دار شده متون رجاری هم کاویار خیرسریم کامل نیوردن اینم بده یعنی آدم وقتی کتاب تو قاموس پیشیش باشه میفهمه کلام نجاشی کامل چیه کلام شفت چیه چون ایشون یه مقدار از عبارات اوردن مرحوم مامقانی کامل آورده ایشون نوشته الاهر قال لارقال ناقص آورده یکی از مشاکلی که این کتاب آیه مامقانی مرحوم توصی داره یه لاره نهادی که چاپ کرده وقتی انجام درس اینا تو اضافه از میکردن فرد عسکری همیشه کتابی که به عنوان مصدره با نسبت مسادر اولیه جامع باشه من اگه بخوام قابوس برم باز خود نجاشی رو نگاه کنم برام کشیر نمونام بود. هی بگردم نگاه کنم کن. خب این خلاف طرز قرضه یعنی از این جهدم این کتاب مشکل داره یک مشکل دیگه این کتاب هم که در جلسه دیوز بحث برمی‌متراز شدیم تندیهای تعبیری های توضیح دادم ایشون گفت تندیه تعبیری داره ما راواش استری که باز جو خوندیم خوندی میگه نمیخواد حالا اون شاخه دوم که خوندی بارش بعد در اینجا هم باز متأسفانه یه چیزی داره مازکرنا یا هرالک مافی نقلیه من راواشه رواشه که خب مال مرحوم میری ان شاء من یه عرض میکنم که که همین کتاب رواشه انصافا که از های اساسی است که در شیعه یک موجی رو ایجاد کرد در بحث رجالی و من نمیخوام حالا چی گفته درسته اما از غرنی آزده و آزده و بفرد موادس ما خیلی دوش کار شده که مؤذم این کارها را ما تو وضع می‌بینیم. می بینیم مثل خاندان مرموم کرباسی و مثل مرموم رواشو ادهی از این بزرگانی که مثل خود مرموم اجاز شخصی و. و ادهی از اینها زحمات زیادی انصافند در این جرد کشن منطقه منطقه المقال فیمالت فقال استکونی تبدیل تلفیق یعنی همین جمع جوری کردن بافتن به هم به اصطلاح شما لفت این تعبیر ایشان خوب نیست تعبیر مرحومه های توستری بله انصافه هم خوب نیست و انهو به ضرب الجدار اولام من قال به نور کتابتی به نور صفحات چون مرحومه ما مقایی نوشته که این عبارات تحقیقاته. مرقوم میر داماد لاود در مثلا به مداد مینا نور علا صفات الحور ایشون نه الا احسن یوا بر دیوار به, به دیوار بزنه و خوب نیست این تعابیر من مخصوصا خوندم برای اینکه ان شاء الله در آن تقسیم ببینید از این کارا نکنید ای این تعابیر تعبیر خوبی نیست زرب دیوار مناسب نیست واشنا علما و حالا اون آقا علاقه داشته و حرفای مرحوم میر داماد و منتها اما این معناش نیست که شما تعبیر توندی رو بکنید حالا این که ماکان این قسمت کتاب توستری هم خوب نبود مخصوصا در زمان حیات ایشان تیزیه چاپ شد خوب بودن رو حصف میکرد از کتابیشون رو حصف بعدش ایشان اصولا مرحوم آقای حاجی نور مرحوم های توستری در آخرای ترجمه موارد روایات و اسمی بره این که کجا هست کجا نیست این کار خوبیه این کار از کردم من اینا من یک چیزی با توضیح بدم که این كسور شد مثلا به زمان مرحوم آیت فستری رسید ما علما ما که اول که, اول که این حواشی رو نمی‌دونستان رواطیرو فلان این رو اولین بار با عنوان رواان فلان و رواان و فلان استيعاب بکنن در کتب اربعه مرحوم اردبیلی داره نه محقق اردبیلی مرحوم میرزا محمد علی اردمحمد بن علی اردبیلی صاحب کتاب جامع روات کلی کتاب نابی نفیسه ایران به خودش با بسیار کتاب نفیسی ایشون برای اولین بار یعنی اولین بار علم من نزدها خیلی تتبع اونجوری نذاشت دکتر اجازه در میان علمای که قرن 13م زاهدانی سخرده در میان علمایشیه ایشون مثلا میگه فلان روا و فلان روا عنه فلان روا و فلان و, فلان و, انو فلان و در کافی استفسار فنی اما جاهاشو شما نکرد نکردن ایشون به همین مقدار اکتفا کرده کافی فقيه همین مقدار استفسار تحضیح به این مقدار بیان کرده و این نبود انصاف هم در شیه نبود من از کردم این نبه مرموهای ماموغانی هم سبت کزش را تو اینجی چونه خود ایشان نشیند بسته بله من این نبه بجنوزی چیندم رضوان الله تعالی علیه ایشون نمی فهم در چون. که یه وقتی با مرموهای آش عبدالله ماموغانی صاحب صحبت بود می گفتن که من وقت من این کتاب من رو چاب نشود کتاب جامان رو راد من, من پیش یک آقای نسخه خطی ازش بیدم بداخل به بی یک زوری قبول کرد کتاب یک ماهه من رو آریه بده یک ماه پیش من باشه که من در خلال یک ماه تمام کتاب رو منتقل کردم به تنقیه خودم نیم تا حالا اون وقت راست نبود دیگه این کتاب خطی بود در مقابل سی روپیه یعنی سی روز مثل این سکه باران داری کلا روپیه یک به اصطلاح چیز طلاینه یعنی. یا روپیه طلای سابقا انگلیسی به قول خودش 30 روپیه طلا که 30 شب این کتاب پیش من باشه با عنوان اجاره امانت تا من چیزهای کیفیرا استخراج بذاره در تنقیح مقالهام داره روا فلان و فلان و فلان روا عن و فلان و فلان این تنقیح مقاله این امتیاز داره کار خود مرحوم ماوگالی نیست این استخراج ها از کتاب جامع الرواتب که با این پول سنگین خیلی سنگین سی روپیه کلا حرف کلا من به اینايه مامقانی کردم چه داخل چاپ می‌کنن تندیرو گفتم نکیره بود بعد داشت نوشت که مثلا من این ازای بجنودیش نه از اول خود مرحوم مامقانی که سی روپیه دادن که کتاب پیش من باشه تا البته من وقتی با این کتاب رو مرحوم روزی چاپ کنه. چاپ کتاب تا از بجنودی یه حواشی مختصری دارن خیلی مختصری و وقتی آن منقوم دیویست قیمت کتاب دارم فرق کار تو بیاد دو جلدش دیویست توان میتوخته یا حاله یک مقداری رو از اون کتاب منتقل شد به تنقیب و کاری که مرحوم آقای مامقانی کرد مرحوم آقای توستری بعد از تنقیب یک کار اضافه کرد و اون که مواردش رو معین کرد این توی جامعه روات هم نشد مرحوم پیشرفت کار مخواب بگم ایشون نوشه با حالا و باقا نقل از جامعه روات محمد جامعه این روات روات فلان بگه جامعه روات امان ایشان چاپ شده آه برگزی چاپ بر دو ده. و ایشون بر کل دوم زیادات ترمیل تحضیب و نباکه فی تن و بنان فی زیادات ترمیل نکاحی الاخرینی ایشان اضافه بر اون قسمت به اصطلاح این که عبارت جامعه روات ر رو تا في اداره موارد رو تعیین کردن اینا پیشرفته نسبت به جنام تنقی پیشرفته که تو قاموس رجال داره مواردش تعیین فرمودن که کجاست البته مواردی که ایشون تعیین فرمودن هم خود جامع مشکل داره من میخوام وارد این بحث بشم خود جامع روا در تعیین موازه مشکل داره که یک وقت یک فرصت مناسبی پیش میاد من توضیح میده و خود آیه مامقانی هم چند داره ایشون بعضی هاشم میگه مامقانی مرحوم آیه مردم آیه مامقانی بنظر من میاد نسخه خطیشون مغلوب شده غلط قلوت هم داره حالا تقییر از الای داییشون میگه خاموس میگه ایشون اشتباه کرده من به ذهن خودم میاد دلیل مامقانی تو اشتباهات علنی بکنه به ذهن من میاد اون نسخه که به 30 روپیه ایشون آیه کرده اون نسخه خطی غلط قلوت باشه پس کتاب رو مامقانی متاسفانه خود جام رو مشکلات فنی داره در این استخدازات روش داره مبارده. جام که ما مقالی میگن، غلط غلوب داره اسمار جاویجا که بناهند اینا جاویجا شده اون هم یک مشکل داره ایشون نصبتا بهتر حساب قاموز چون مراجعه کرده شخصه هم حساب خودش کتب ارگاه رو مراجعه کرده اما هم بعضی مشکلات داره مثلا اینجا داره که بنان انعب این سه از هاش عبی بنان ان عبی. بنان برادر احمد ابن محمد ابن ایساز ان عبی ان اهدالله ابن المغیره هم افتاده اینجا اینه الله ابن المغیره افتاده. من نمیخواب وارد این بحث بچم چون این بحث الان نمیخواب وارد بحث رجالی و بحث خدسات این طوری بشم ایشون هم مشکل داره و بیشتری مشکلش استرسا نداره و راه درست قصه انصافا در این کتاب ها که از زمانه مرقوم ارجبیگی شروع شد بهترینش همین کتاب واقوییه معجم البته اونم از این مشرات ایجاد دیگه داره بهترین قسمتی دیگه از اون زمان در این 200 سال اخیر شروع شد از سال 1224ه شروع شد از دوازده چند لغات ایشون از سال 1200ش شروع شد بهترینش همین است که خویی تو معجم آوردن خیلی غلط‌فهمی‌های جام روات گرفتن متحرز غلط‌فهمی‌های تنقیح نشدن یا این کتاب این دکتره نه اما جامو رواسو چرا میگن چه جامو رواس مثلا اشتباه کرده راسته، یعنی نه همه غلط‌گرو توی جامو رواس ادعایشو گرفتهن بیشتر این غلط‌گرو توی جامو رواس به تمیز مشترکاته انصافا ایشو مثلا یه نفر واسه اش اسمش مثلا علی ابن بوده یه ادعازاده یه ادعای علی ابن اسماعیل میتا بوده یه ادعای علی ابن اسماعیل مثلا فلان بوده جاو جاو بوده از این جور چیزا توی جامو رواس زیاد این نظره که آقای خو متحرز شدن و درسته این مشکل تو جامعه روات هست این مشکل هست خود ایشون تو بحث مشترکات خیلی اونطور وارد نشودن حالا اینم یک بحث دیگه داره کلا جورش نمی‌شه اینم یک نقصی که در کتاب مرحوم استاد هست که بهتر بود تو بحث مشترکات وارد می‌شد ان شاء الله در بحث دیگه جوی دیگه این راجه ایشون مثلا علاوه به کتب اربعه در حدود خفایث هست خیلی بیش از این مقدارش نوشتن نه یکیش هم اصولا نه استاد و نه ایشون تحلیل های فهرستی و رجالی دقیق هم ندادن البته این بحث راوی و مروی هم نوشتن یکی از اهدافشان هم بیان وقوع سخت ها بوده یه مقدارش هم آقای دارن یه مقداری راه بیان وقوع سخت رو که قبل از آقای خویی مثلا انجام دادن برای اولین بار این روش رو مرحوم های برو انجام دادن در تجیر دل اшон برای اینکه ثغظ ها و زیادی ها و ها روشن پس سعد رو به نحو کامل آوردن. وقتی 50 سند رو نگاه میکنی یه سند میتوشه که اسمو فع میفهمی که چه ثغظ داره. پای گروجی راهی رو که به در رجال بود نرفتن راه دیگه ای رفتن. و اون ذکر سعد کامل. مثلا علی بن ابراهیم بن عبی بن نوخهن این راه در کتب رجال نبود. خوب دقت بکنید. در کتب رجال چه سنی چه شیعه. خوب دقت در کتاب رجال چه سنی چه شیعه فقط راوی و مریعنه میارن حالا مگه یک مهم باشه یه طبقم دروتر یا عقبتر بایله غالبا اکتفا به راوی و مریعن میکنن آقای در جدی کل سند رو گبردن البته ایشون هدفش این بود که سخت. مثلا همینجا این سخت رو ما از کل سند فهمید سخت ها رو با کل سند بهتر میشه فهمید یا زیادی ها رو راست‌گویی شاملش مونده درسته اما نه با همون راهی و مریدیان نمیشه استخاره فهمید خیلی ابزوردیک و کامل نیست راجع به این بحث راه آل بروجدی هم یه وقت یک صحبتی کردم ان شاءالله یه فرصت پیش بیاد باز راجع بهش صحبتی خواهیم شد سعی می‌کنم این راهی رو کیفون رفتن که به اسم تغییر اساسن چاک شده آیا این راه دقیق هست یا یعنی نه آیا فوایدی داره و اگر فوایدی داره خود مرحوم‌های بروجی رو فواید استخراج کردن یا نه چون اون را اینکهشون اصلا یه فواجد دیگه ای داره اینی که در کتب رجالی مورد بوده که خود ایشان هم استفاده نکرده قدس الله سره. ان شاء الله جای دیگه صحبتش می این راجع به این قسمت کتاب قاموس ها شما هدفمون خوندن نیست، هدفمون راه نشون دادن و اینکه چه کار باید کرد و چه کار شده و چه کار باید کرد. بعد ایشون از عناوین اهل سنت عبور که آیخویی هم نذاشت. ما وقتی ایشون بیشتر آورده از ما بغانی. و انوانه ها زهبی زهبی مراد میزان اطلاع ابن حجان در لسان میزانه و وصفاه به غاز موسل و نقلا تضعیف هم تا اونجایی که الان من تو زهنم ایشون کامل نقل نکرده اتفاقی است این رو کذاب میدونن زعفش اتفاقی زعف سکونی بین اهل سنت من در کسی از اونها او رو توصیه کرده این به کتاب قاموس و رجال. پس ایشان قدسان با حسابه وساقتش رو قبول نمیکنه و قبول نمیکنه این که اینکه عبارت شیخ در حده وساقت ایشان در می آن ما شما از کتاب های متعددی رو در اینجا متعرض بشیم که برای کارهای خود آن در جا دیگه هم مفیده یه مقداری باز بیشتر متعرض این بحث می یکی از کسانی که در این جلد مفصل نشدند در حد خودشان نشد مرحوم حاجی نوری در مست... خاط مستذک در خاتمه ایشون در خاتمه یک شرحی بر خاتمه خود وسایل دادن بحث اول ارزش کرد زمان مرحوم شیخ بهروز زمان میگه همه چیز رو غالبا 12 یا 11 درمانی 12 تا ایشون خاتمه اش 12 فایده قرار داده مرحوم حاجی نوری هم خاتمه 12 فایده اما این 12 تای ایشان تقلید از 12 کتاب نیست این با هم دیگه فهم می یا الان مراجعه اندیگی میخواد که شرح بده نه اشاره کنه بعد یکی از فایده مرحوم حاجی مرحوم شیخ حر ذکر مشیخه صدوق و مشیخه یا مشیخه مرحوم شیخ طوسی در تحریر و تحریر استفسار ایشون این دو تا مشیخه رو داده مرحوم حاجی نوری مشیخی فرید مشیخی سरीज به استفسارش البته کار قبل از ایشون هم شده مرحوم من توضیحاتش رو چند بار اثره اولین کسی که ما داریم در مباحث رجالی راجع به مشیخی صدوخ ارزیابی کرده علامه هست در قرن 80 ما قبل از ایشون نداریم همین حالا از عسكرم که فاصله زمانی داریم صدوخ کتاب در قرن 4 نوشته هماخر قرن شارون شما نگاه بکنید در قرن هشتم ارزیابی ها بیشه. چقدر فاصله هست علامه در این کتاب خلاصه‌ای که داره در آخرش طریق بولاخونان اولین کسی که این کار کرده علامه هست. در رجال و اولین کسی هم که در فقه این کاره کرده خب دفت بکنیم اصلا یه رواز رو از صدوق بیاره برای صدوق په سریم صدوق حسن باز علامه در مختلف و غیر مختلف اونجا میگه پس اولین کسی که در رجال این تقسیم بندی رو او و در فقر اللام از به کتاب رو و فقیق. و بعدها مثلا مرموم مجلسی اول در شرحی که بر نوشته نمشته روزاز و متقیی که اخیران چاپ شده ایشون هم مشیخه رو شرح داده پس قبل از هاجی نوری این ها کار شده به و تا مشیخه فقیی شرحش این قبل از حاجی نوری، ناگهان حاجی نوری خیلی تتبع کرده. سبب عرض کردم انصافاً بیجا وی هلدا، ما این بین اینکه خیلی نتایج قبول نداریم، اما زحمت فوق العاده‌ای کشیده. یک جاییام ظاهراً تیم‌های تکنولوژی نارو یا ضرر داد. منظورم آقای گجنوردی حتی سنی آقای گجنوردی قدسنده او سر، از معلوم امن نواش خفاص و میکسار مفاتی، حمام رفتن، حاجی حمام با هم برق برق با هم برخور کردیم سند آقای بجنوزی از مرمان آشه عباس از حاکی نوری فرمون توی این صحبت شد حاکی نوری فرمونم بگیم که هل سنت برای سیوکی 500 تا رساله به کتاب نسبت داده و اون زحمتی که من در مصدر کشیدم از تمام زحماتی که سیوکی در اون 500 تا کتاب کشیده بیشتره هم یه کتاب اون زحمتی که رو تحلیفش من کشیدم از تمام زحماتی کتاب خیلی زحمتی خیلی مرد پرکار يا حاج نوري واقعا آدم قصه با حالش میخوره خیلی فوق العاده انصافا عمرش رو خوب صرف کرده هم ساکنای بسیار خوش داشتند مردی استعظاظ بزرغا بهساز همین مرغ استرا از شمال ایران و بسیار مرد موفقی است انصافا خیلی پرکاره انصافا قابل اختناص ایشان ایشان در این جلدی که الان چاپ شده به شماره 4 خاتمه جلد 22 فارسی بش یک شرحی بر ملای بر مشیخه صدو بدهند انصافاً شرح ایشون بر مشیخه به مراتب از شرح مرحوم آقاخوری مجملسی مجلسی قدر به اصولا متفصلتر و تر و مراجعاتش بیشتر حالا من یک شرحی راجع به کیفیت وصوله مباحث جالیبی این درجه از کارها و تعمق داری در شیعه اینه بذاریم در رساله بعدی متحده کتاب بعدی که میخوام بخونم اونجا تاریخش هم اونجا بگم ایشان در به اصطلاح طریق مرحوم شیخ صدوق به اسماعیل بن مسلم سکرونی حالت کردن سابقا مشیخی صدوق نامرتبه مرحوم شیخ هور اولین که دیست که مرتبش کلی به حروف هجایی ایشون هم شردی که داده رو چنده شیخ هرده یعنی روی مشیخه شیخ هورده. اون نه ترتیب شیخ هرد نه مشیخه و همون ترتیبی که مرحوم شیخ در وسائل آوردن با حروف هجایی خب ارز کردم راجی به روات سکمونی شکال اساسی البته طریق مرحوم شیخ صدوق رو هم دخونیم ایشون از پدرش و محمد بن حسن که مراد ابن الولیده از سعد ابن عبدالله ان ابراهیم هاشم از کلم ابراهیم هاشم از کوفه که به قوم میاد، ایشون مبدع انتقال این کتابه ادهی از بزرگان از ایشون نقل میکنن یکی پسر یکی سعد ابن عبدالله یکی سخفا یکی محمد ابن عحمد ایشالا بعد در یک مناسبات ای ادهیشون اسم برن ان نوفری انستکونی به این سند مشکل هم تو که الان اشاره کرده بیه که نوفلی سکی سکونی ایشون راجبی نوفلی یه صحبت میکنه که حالا من بایدون بحث میمیشم. چون انصافا ایشون هم آخرش اجازه میده اشاره میکنه که اگر ما سکونی قبول کنیم، نوفلی باید قبول کنه راسته حالا من بعض توضیح مختصری عرض میکنم و اما سکونی ایشون واضح بحثی سکونی میشن فخبرو هوا اما سهی هون این صحیحان اولا معروشیشون وساقتش قبول داره این یک. این نمال کلام شیعه است یا سنی اگر شیعه باشه صحیح میشه اگر سنی باشه محاسم میشه و مشتوهر من زعفهی فهو کماسر رهدهی بحرال علوم و غیرهو من المشهورات اللتی لا اصله ها اینی که آقای توستری اصرار داره که خدای که به دیوار بزنید اونطوره بیا بودی که از این برای هم یه تون شدن که نخیل این آبا هستن شیعه هست و سغه است و خبرش قابل قبول است و سهن سعی هست فی انا لا مجد فی ما بایدی نامن کتب هادلتن و ما نقل ان منها اشارتن الا قد هنفی دان الا که نسبت آمی بودن زنی کنم منافی با وساقت نیست ويدل على مراد از از بلل اینه که شیعه هم باشه امامی هم باشه نقاد امور حالا ایشان به خلاف مجموعه های الله از عظیم هستند اول قول شیخ خلعه و هم من, من رواه بل عامی شیخ هم از که مفتیشون سنی ولعجل ما قلنا عملت طائفه دو رواه حسب بن و رياضه کلو و نوح بن دراج و سکونی و غیرهم من العامه ان ائمتنا این عبارت اخر عبارت ادره رو ایشون عبارت ادره کامل کامل ننموده از مشکلات همینه وقتی عبارت نسبی نسبی نقد میشه مشکل توضیح میکنه فی ما رواه ان ائمتنا غیر من ائمتنا من العامه ائمتنا دو تا از اصلا در عبارت شهر در آخر عبارت شهر بزاره. یک فیما لمیون که رو یک اون چیزی باشه فتواش منکر نباشه دو و لم یکانه این ده این دو تا این ما خوب دقت بکنید مثلا با کار بکنیم یکی لمیون که رو یکی هم لم یکانه این ده این توضیحشی سابقا هم ارز کردم چون دومتی به عبارت ازداره میخونم بعدم ارز میکنن. شیخ این این تا از کردیم من سابقا توضیح هم عبارت صدوق نبود قبل از شیخ صدوق گفته لا افتی به ما یعنفر دوبه شیخ این تعبیر رو داره به جهه تعبیر صدوق عمل میکنم فی یون که رو ولم یکنه انده هم خلافو که الان این رو بعد توضیح داشته بعدش هم مشکل کار اینه که ایشون صدر عبارات حث کردن اصلا حث خوب نیست هست داره بدی اصلا قابل قبول مسلم نمیونه حثی درست یک فردا عبادت میکنه اگر عبات کامل عرضه بود شاید در از اوها میشون حل میشه ب دلیل دوام قونه ایرن که مواز امن کوتوه شکن کما یاتی فی نقل بعضه بله. دارد عرض میکنم جیم قول المحقق مسئله که من المسائل لعزیه من نشده نوز این دیشتر توزیه ای این آوزار نگاه کنم ازریه از قدریه از قدریه از قدریه کتاب چیه ظاهرم هنوز چاپ نشده من ازریه منسور به میگم نشد نگاه کنم چون الان ظاهرا کنم که من میدونم نسخی از این در اختیار من نیست ما نیست فیرد منزع فالخبر المعروف الما یه بسا یا فهر ولا یو تهر حالا اونم خود این رو باید از سکونی در کافی هم آمده و اختلاف در زمتش هم هست که اجوری بخونه حالا بنابر این قرارت الماء او یو فهر ولا یو اگه اینجوری بخونیم این که اشکال کردن به نرابیهو از سکونی ما لفظهو قولهو بله ما لفظهو اولوه و روایت و مستنطن دستکونی و هوا آممیان قولنا هوا و اینکان آممیان فا هوا منسقات رواهات ایشون سرد محقق ایشون توصیح کرده و قال شیخنا ابو جعفر مراد مرهوم کلینی مرهوم شیخ توصیست فسادفا ما هر سه که فوتو برور نوشتن اسمشون محمده هم کلینی هم شیخ و هم صدو و همه هم شونم کنیشون ابو جعفره حمد صلی الل و قال شیخانو عبو جعفر که مراد در اینجا مرحوم شیخ توسیه فی مواز امن کتبه این نل امامیته مجمعتان علال عمله به ما یرویه از سکونی و هم و من ما من از این عبارت رو به مرحوم شیخ محقق از, از شیخ توسی نرمی کنه این شالا عرض می کنیم چین عباد در عده نیست حالا این کسی که کتاب رو اونجا تعریف کرده آدرس داده ادته اصول جلد 1 خفالم به اختلاف به اختلافی این چیز دیگریه به اختلاف به هر حال این هم یکی از عجایب کاره که محقق با جلاظشعنش مطلبی نقل کرده که اصلا در ادد نیست اصلا هیچ چیزی نیست واژه من ان بعد توضیحش ارج می کنم این عبارت منشأ تمام شهرت دیما بعده دقیقاً همین عبارت اینه که ال امامیه مجمعتان عمل به مایرگی سکونی و اما و من ما هما من اصباد یه عبارتی رو به شیخ نسبت دادم در قده و میشالا ارز خواهم کرد که این عبارت در قده نیست و من ارز کردم شنبال یک مشکل کار اینه که ادهی از بزرگان مثل این آنی که زوره اخباری دارن اگر مطلبی رو نه بگه یه آقایی بعد نگاه کردن تو مسلم نیست دیگه میگن نه ما تعبدان با قبول بکنه این که واقعا عجیب چین این چیزا ولن یغده به بالروایه مع اشتهار صدر و کتب جماعاتنا مملوغه من الفتا والمستند الى نقله فلسکون هادیه کلا ده این مساله معقل درسته. یعنی این روایت سکونی هست در کتب اصحاب در کابی از در ترتیب از اصفی است البته با شذازه ده ایشون میگه روایت سکونی هست و از خوابش عمل این درسته دار قون و شیخی کتاب فی مسئلت میراث المجوسی و قال قومون چون مجوس گفته شده که مثلا خواهر میگه مادر میگه بعضشون گفتن اگر از نصب باشه از سبب از سبب از سبب بعض باز بازها مطلقا از سبب از, از سبب از و قال قومون نهومی و رسون من الجهتهی مهر یعنی سبب و نسب. سوان کانم ما یجوز و پی از اسلام اولای یجوز و حالا قول این بی هوا که مجوز ارسوی بره الا انقال من انهو قبل رو بیسته و قبل کتاب تحذیب الاحکام و انهو و رسول نرجیهت هین بعد ایشون داره که مرحوم یه این فتوار رو من میدم بعد مرحوم های حال جهوی گفتن غلم ديال قرقناص و حدیث سکونی پس ایشان در مسئله میراث مجوسی رسما به روایت سکونی و فی رجال سید العجل الاجل نقل در رجال سید بهر العلوم صحیحه بله این کلمه ار روایت صحیحه در جوری چاپ در دست بزن یعنی در کتاب خود نهایی نهایی شهر توسی اینطوره طوره رویت روی و قدر اوردناها فی کتاب تردید درخم یعنی که در نسخهی که من از نهایی دیدم چاپ شده رویت رو. نا رو. که مرموم سیدو در در رجال خودش من رو به خواهد رجالیه سیدو و که چاپتر چهارجیه در اونجا در قدر روالیه یکتر روالیه سمی به رجال سیده اجل مراد سیده بحرانو نقلت این نقلت همه شیف و فروایت سمیه این دقت مرموم آنجی نوری بگید که من دارم نداره اما مرموم تو بباید اعباردی که نارده از نهای شیر توی سمیه هم داره الاخره. و هو عدل و اگه عبارت این طور باشه که مرموم سیده بحرانو گفته خب عدل ر و اما علاله اول پر بعض علاله امل به ما تفرمده به روایته لا یکونو الا صحت این یک نقطه لطیفیه این نکته لطیف و این درست هم هست این نقطه اجماع هم و که نبیل و و اون حاصلش اینه که بخواهد بگی اینی که شیخ میگه چون اشکال هست که شیف نگذرست کنید سقتون چه گزه عمل بروار ایشون مخبط بگرد عمل بروات سرش به ساقت میده سر این که عمل کردن بروات سکونی به ساقتش نه نه عمل به ما تفرد برواتی را کنه لا ما ها و قال از سیر رحم اونال و مازکره شیخ و المحقه رومای علی اعتماد علی نوفری ایزان فه این نهود طریق لسکونی و را بی هر محنوم سیر محنون و همون فطرت ذاتی خودشون هوش جبلی و ذاتی خودش میشون میگه چون طریق به سکونیست بعید نیست که نفر هم رو روکنیم من اینا توضیح اشاره از توضیح رو از این توضیح دادم، دادمشار کردن توضیح هم میشه بر از می این یک مبنای که به ابگاهی ازش تغییرویر کردیم ما به مبنای فهرسسی یعنی وقتی نمییم به روات سکونه عمل میشه و راویش نفره یعنی باید ما به دی در به ساعت نفری همگه بحث نکنیم چون اگر قنا مشو بگیم ما به رازه سکونی عمل میکنیم و خود نوقلی ضعیف عمل مثلا توصیف نشده عمل نمیکنیم چیزی حدود نزدیک 80 درصد 85 درصد سکونی صادر میشه این خیره راست حرف مرحوم سید طب سید برونو مندنمی توضیحات بده چون اینکه میکسر به توضیح داره یه توضیحاتی را بدارم ه یعنی پنجم اول محقق المطوع فی باب مساله نقاص آن نهولایی که اون دم نفاس آن حتی اطراف او از الولاد او بعد نقل خدا را سکونی مالعظه و سکونی آمیان لاتی نهول سرآفرم این مطلبی رو که ایشون خوا نقل بکنن درسته این مطلب اصلش درسته و انشالله از که این صادقانیه از ام زمانی که درشیه این تخریب آمار که ابرات شکل و سهرات استر از مال مهاتر خوب دقیق برموندید عبارت قاموس هم خوندن برزمان که محقل و منطقه مقام محقل از عبارت شیخ توصیح فرمی زن که مرمون قاموس هم تند تندن گفت این زربال جدار اوزه ها این زربال جدار اما این مطلب درسته چون ما تاریخی رو همیشه حساب میکنیم پس این نکته تاریخی که از عبارت شیخ اولین باری که ازش به صاحب تامینی شد که اولین بار معقبه ما تا قبل از این عبارتی که مشکل باشه که از عبارت شیخ توصیل در آمده نه و انصافا هم بعد از معقب در علمای ما معروف شد اینو قضیه میگه بخاطر زبرجی داره چون به حال این رو ریشه اینه پس عبارت البته عبارت بعد از شیخ عبارات صدوق داریم اما صدوق خیلی روشن نیست لا افتیه ما ی زرد به که یک کلمه است برای گردی شیخ یعنی اجری سی شده اثر کرد ایشون متأثر به عبارات صدوقه که بعد از شیخ قرن ششم قرن هفتم ماحق محب متأثر به کلام شیخ طوسیه مرحوم ماحق متأثر به کلام شیخ طوسی بوده هیشون از کلام شیخ توسیق توسیق رو بهم میدن این هست سرشته یه رحمه از کلامات شیخ در قده برمیده به محققه هدیه درده هیشون هم بین اصحاب مشهور میشه انصاف هم مشغول دیگه بلا اشقا لیکن مبدهش غمه هفته هم. تا اونجایی هم که من میدونم اولین با که متنبه میشه عبارت ولی بر توضیحان در قانون سر کرد از قانون نگران نه، برهم توضیحی آدمی که توندیش توندیش میکنه حال یعنی آدمی که بکنه. تا اونجایی که من دیدم، حتی کویی آنی که مردم آقای کویی کردند داستان داستان برد قانون بعد, از قاموس رو ده. بعد از جا مردمی که با قانون مو تصریح دادن قانون تغییرشون شاب شده. اینجا دنبال حرف مردم قانون نگران اولی کسی که من دیدم پس از قرن هفتم شروع شد تا قرن 14 آمد، خلاصه مثل این سر تغییری از اون روشن بشه، یا ما از قبل داره بحثها رو چه اشتباه کنیم؟ خاکی نبوده رفتش ندیدن. پس از قرن هفتم، از ابزار شیجتوسی استفاده توصیف شد که این عبارت نامش از کهشون آمیزه که این سگ. قبل از قرن به عمل میکردن توضیح کردن چرا اصلا تو کافی آمده میدونه کافی تو را عمل کرد توی فقیه آمده نمیدونیم چرا چرا نمی نمیدونیم اولین توضیح رو صدوق داره دومین توضیح رو شیخ توسی داره در برده پنجان. توی پرمه هفتان توضیح شیخ توسی به این معنا شد که سکونی سه بسان الا از نها آم میان از قرن هستون تا چارده هم بنا به همین چود سقتون الا انه ها آموی ها مرموم های توستهی گفت نه از عوازی شکل توسی توسیق لر اگر همین کار رو ما مانور رو می داد ایشون به اوشن می کرد خیلی دهتر از یه حضر زرگرش دارود این شدا فردا محمد المعال حسابه بکنیم